این شروع بشرا جمیعا و, و انترو اغلال السلام علیکم و الله و برکاته گرامی های گرامی ببخش دری برنامه رادیو صدای خلافت خوش آملید حالا توجه شما را جلب داریم به داشته های امشب اتفو احلا نشی اتفو احلا نشی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 رب ماست رب ماست سدد الرصاص وجاء القصاص الوراء الخيل جالت استحالت راديو صدى الخلافه رادیو صدای حق, حق. نواد لحظات خبری سرای خلافت <تصفيق> گزارش‌های همه جانبه از فعالیت‌ها و پیش روی های دولت اسلامی در تمام جهان لحظات خبری سرای خلافت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 شنوندگان عزیزی رادیو صدای خلافت با داشته های برنامه امشب ما خوش آمدید نخست از همه شما را از آخرین تحولات و پیش های دولت اسلامی با خبر می سازیم و این هم سرخطی چند خبر کشت شدنی هفت سرباز سوری و انهدام دو تانک آنها در تدمور کنترول دولت اسلامی بر پنج نقطه مهم در جنوب ولایت خیر سلی نفصواری. سلی نفصواری. این هدام دو که دیگری نیروهای نسیری در ولایت خمس سلی نفصواری. سلی نفصواری. از بین رفتنی هفت تانک نوع هممر ارتش ایراق در شهر سلی نفصواری. سلی نفصواری. سلی نفصواری. و حلاکت یک دعوتگری نصرانی در بنگلادش. صليل الصوارب صليل الصوارب نشيد العباة ودرب القتال غريق الحياة وبين اقتحام يبيد الطغاة ونظيم صدار جميل الصدار صليل الصوارب وإن هم مشروه خبرها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته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 از بین رفتنی هفت تانک نوی هممری ارتش عراق در شهر هیت و حلاکت یک دعوتگری نسرانی در بنگلادیش. و این هم مشروع خبرها. نیروهای دولت اسلامی در یک عملیات کمین هفت سرباز نیروهای نظام سوری را در شمال غربی تدمور به حلاکت رساندند. این نیروها زمانی در کمین مجاهدین سرخوردن که با وسایت نظامیشان خواهانی پیشروی و سوی شمال غربی تدمور شده بودند، در همین حال زمانی که نیروهای نوصری به هدف کشیدن اجساد شدگان دوباره وارد صحنه شدند این بار نیز مورد حمله شیران دولت اسلامی قرار گرفتند که در نتیجه یک تانک نظامی شان تخریب گردید یک خبر دیگر از تدمر می‌رساند که تانک دیگری نیروهای نظامی سوری در تپه العامریا در شمال شرق شهر مذکور تخریب گردیده است در همین حال یک تانک دیگر نیروهای بشار زمانی هدف انفجار ماین قرار گرفتند که این نیروها خواهان پیشروی به شرق فرودگاه تدمور شوند ناگفته نماند که در این انفجار سرنشینان تانک نیز کشته شدند تازه‌ترین‌ها از ولایت خیر حاکس که نیروهای دولت اسلامی بر پنج نقطه مهم نیروهای نوزری در کوه سرده در جنوب شهر دیروزور مسلط شدند ها از ولایت حلب می‌رساند که مناطق البیل شیخ جاریس و یحمول در شرق شهر اعزاز با کنترول دولت اسلامی در آمد در همین حال یک خبر دیگر می‌رساند که مناطق فیروزیه و تلحسین در نزدیک شهر اعزاز نیست با کنترول مجاهدین دولت اسلامی در آمده است دو ارادتان که نظامی نیروهای سوری در شرق القریتین واقع در ولایت همس از بین رفته است این حادثه زمانی رخ داد که ارتش سوری می‌خواستند به سوی منطقه الباریده در قریتین پیشروی کنند در اثر انفجار یک ماینی جاساز شده از سوی مجاهدین دولت اسلامی در مصر، یک اراده تانک و یک ماشین ماین ارتش مصر در شهر عریش واقع در شمالی ولایت سینو از بین رفته است. گزارشه از زیرا است که مجاهدین دولت اسلامی هفت اراد موتر هممر دو BMP و سه زیرو پوش نیروهای راقی را در یک حمله از بین بردن این وسایت پس از آن از کار برآمد که نیروهای دولت اسلامی بر پایگاه های نیروهای راقی در منطقه دولاب واقع در شمال شهر هیت حمله کردند جنگنده های نیره رافیزی اراقی مناطق الجولان و الحلابیسه را در شهر فلوجه بمبار کردند در اثر این بمباردمان وحشیانه هفته فرد ملکی کشته و زخمی شدند در همین حال یک خبر دیگر از شام میرساند که جنگنده های امریکایی ارشاف در خومه حلب را بمباران نمود که منجر به شهادت دو مرد چهار زن و جراحت چار تن دیگر گردید و در اخیر یک خبر از بنگلادیش مجاهدین دولت اسلامی یک دکتر نصرانی را که مردم را به دین نصرانیت دعوت می کرد در منطقه کوشیتا در غرب بنگلادیش ترور کردند. این بود تازه ترین تحولات دولت اسلامی. صلیل الصواري. صلیل الصواري.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 و یک تحریف مشهور است که تاغوت او را عبادت کردن می شود دیگران او را عبادت می و او از عبادت دیگران راضی باشد ایره تاغوت می گن تاغوت حکومت تاغوت عبادت تاغوت اطاعت و متابعت. و کسی که دعوه میکنه که بله و تعالی ما ایمان داریم به توحید ایمان داریم لیکن غالباً طاغوتا دوست داشته باشد یا زبانان این طاغوتا تعریف میکرد باشد یا همان از طاغوت اطاعت میکرد باشد یا از جمله‌ی نواقض کلمه از جمله‌ی نواقض ایمان است این برنامه را دوشنبه شب ها و چهارشنبه شب ها از رادیو صدای خلافت فراموش نکنید <تصفيق> و الكاذبين السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شنوندگان عزیز رادیو صدای خلافت باز هم با برنامه تاغوت شناسی خوش آمدید بحث ما روی جنبه های گوناگون تاغوت تداوم ادامه دارد در برنامه امروزی روی حکم کاهنان ساحران و فالبینان بحث صورت می گیرد. زیرا این چیزها نیز جامعه را به سوی تباهی می و از جمله انواع تاغوت بوده است امروز ما می بینیم که جوانان، مردان و زنان به خاطر غیب به سوی همین فالبینان رجوع می کنند. این مردان و زنانی که به نام فالبین و کاهین در جامعه قد یلم کرده اند نه تنها از غیب چیزی نمی دانند بلکه اجتماع را به سوی حلاکت منوی کشانده است. از این جهت ما خواستیم تا در برنامه امروزی روی احکام همین طایفه در شریعت اسلامی و از بحث نماییم. باز هم مولیس بابو احمد را با خود داریم و به سوالات ما پاسخان داد. مولیس محترم از هم اول به برنامه خوش آمدید. شزاکم الله خیرا خوش باشید. در قدم اول میشه بگویید که همین کاهینان، ساحران و فالبینان از نظر شریعت اسلامی چه حکم دارند؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه اما بعد عوض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نخصص همه سلام خود را برای کارکنان راديو صدای خلافت برای همه اشناواندگان راديو صدای خلافت السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته تقدیم میدارم و بعد سحر، كهانت و فالبینی سحر در شریعت اسلام اکبر القبایر گناه است از جمله هفت گناه مهلک یکش سحر است و فالبینی هم یک نوع جادو یک نوع سحر است و سحر کهانت فالبینی اکبر است حرام است در شریعت و کسی که سحر میکنه ساهر است کاهین است فالبین است از نگاه شریعت حکم حکمی کفر است و کافر است و در شریعت اسلام جزای ساهر کاهن قتل است یعنی قتل از واجب است حد ساهری ضربت صیف حدیث است که حد ساهر جادیگر زدن با شمشیر است کردن از زدن می شود.الحمد لله سالهای طولانی این و کاهنان با جزای اعمالش نرسیده بود اما امروز الحمدلله لله سوما الحمد خلافت قائم شده است. بر این حاج نبوت و ادود را بالای ساهرا و کاهنان جاری کرده است الحمدلله در فیلم ها ما مشاهده کردیم که ساهرا گردنش بریده شده است. امروز فتنه سحر جادو تمام دنیا را فرا گرفتگی است. همه انسانیت را خصوص زنان را به سوی حلاکت و بربادی کشانیدگی است در سرزمین خراسان هم خلافت قایم شده گی است. ان شاء الله ولعزیز ای و کاهینان را فالبینان را عزیز سرزمینم ان شاء الله ولعزیز باذن الله تعالی به کمک الله تعالی ان شاء الله نوابوت میکنیم به جزای اعمالشان ان الله میرسانیم شریعت و سر اونها ان شاء الله ولعزیز تطبیق میکنیم ازرار همین ها در جامعه چگونه است وجود وجودی تو اشخاصی که مصروف فالبینی و مصروف کاهینیت هستند وجود از اینها در جامعه چقدر موزیر است و زرر این قسم سایران و کاهینان در جامعه گسترده است اکثر جوانان را زیاد تخریب کرده است و جوانه زنا را بسیار خراب کرده گیست سوی شرک و بسوی ادعای علم غیب و دعوت میکنه اما کسایی که یا را گفشه اینه پیش اینا میرود نفس رفتن در حدیث آمدگی هست حرام هست تا چل روزه عبادتش نمازش قبول نمیشود اگر گپای این اینا از طریق اعتبای شیطان این اصل مرد جادوگر، ساهر، کاهن یا فالبین این متبی شیطان است مردم را به عبادت شیطان دعوت میکنه و کسی که گپ اینوها را تصدیق میکنه راست میدانه بزرگترین خطر در ایمانش است و کافر میشود کسی که یارا را تصدیق میکند او به قرآن با ان شریعتی که برای نبی کریم صلی علیه و وسلم نازول شده از کافر میشود میشه بگون که همین گونه اشخاص یا همین چیز در تاریخ گذشته هم موجود بود یا یک چیز نوپیداست بله در تاریخ در قرنه های گذشته هم موجود بود مثل که در زمان بیستت عزدت موسی علیه سلات و سلام یه سحر کهانت به اوج خود رسیده بود سنت الله تعالی به این جاری است مطابق احوال همون مردم برای هم پیغانبرش الله تعالی یک معجزه میده. در زمان نبوت حضرت موسی علیه و سلام سحر به اوج خود رسیده بود و برای حضرت موسی علیه و سلام الله و تعالی این یک معجزه ای داد که تماماً ساحرا و جادوگرا در برابر معجزه حضرت موسی علیه و سلام همه عاجز شدند همه حقانیت حضرت موسی علیه و سلام را اعتراف کردند که فرعون هفتاد هزار جادوگر داشت افتاد هزار جادگر در مقابلی حضرت موسا علیه السلام آمده همه آجز شده حقانیت حضرت موسا را به چشم سر اونا مشاهده کرده همه برای موسا علیه السلام برای رب واحد همه ایمان عرضه کردن سوال سی و مزی قرار است که رفتن نزد همین فالبینان از نظر اسلام چی است یا کسی که نزد همین گونه اشخاص به خاطر دانستان علم غیب میره چی توست حکم از اونا حکم رفتن بنزد فالبینان یا صاهران و کاهنان این حرام است رسول الله صلی الله علیه و سلام می امام مسلم رحمه الله روایت میکند قال رسول الله صلی الله علیه و من اتا عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. رسول الله صلی الله علیه و سلام می کسی که پیش یک فالبین میرود از فالبین سوال میکنه از ینه در باره کدام چیزی از فالبین سوال میکنه که به روشنایی بدهد برای همه کسی که پیش فالبین میرود تا چل روز نمازش قبول نمیشود اما کسی که در نزد فالبین و کاهین و جادگر میرود و چیزهای رازو ازو پرسان میکند و گپایی که او جادگر میگوید برای همه کس او را تصدیق میکند این کفر است رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید امام احمد روایت میکند قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من اتا قاهنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد کثر بما انزل علی محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید کسی که پیش یک کاهن و فالبین و جادوگر میرود پس او را تصدیق میکند آنچکه میگوید جادگر و فالبین او را تصدیق میکند یقین میکند که راست میگوید او کافر شده گه است با آن شریعتی که با آن قرآنی که برای محمد صلی الله علیه وسلم شده گه است پس نفس رفتن پیش کاهین و جادوگر و سوال از چیزی ای تا چیل روز عبادت قبول نمی شود ای گناه کبیر است اما گپای جادوگر فالبین و کاهین ها را تصدیق کردند. ای کفر سریح است مرسیب اینها ها ادعای علم غیب را می کنن. آیا واقعا علم غیب را می یا دروغ است چطور؟ ای کاهین و ای جادگر در ادعای علم غیب مردم گمراه میکنند اینا دروغ میگویند در سهری آیتهای قرآن الله تعالی را بیان کردگی است علم غیب خاصی الله جل جلال و هو است بغیر از الله تعالی هیچ نمیداند حتی پیغمبر هم نمیداند ملائک هم نمیداند الله تعالی برای رسول اکرام صلی و وسلم خطاب بگنه قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيبه إلا الله برای رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالی خطاب میکنه بگو میگه برای مردم نمیداند کسانی که در آسمان هاست کسانی که در زمین است غيب را نمیداند بغیر از الله تعالی فقط الله است که او غيب را میداند بغیر از الله تعالی به بغیب عالم نیست دیگه الله تعالی در سوره جن آیت 26 الله تعالی میفرماید عالم الغيبی فلا یظهر عَلَىٰ غَيْبِهِ اَحَدًا الله تباره و تعالی آلم غیب است الله تعالی آگاه نمی سازد بر اسرار غیبش احد را پس ادعای علم غیب کردن تقذیب سریع ای آیت های قرآن است اینا به ای آیت های قرآن اینا تقذیب میکنه اینا کافر بیدین استند جزاکالله خیرند مالسی به همه معلوم است که هدف اساسی خلافت اسلامی تطبیق شریعت الهی و عمل کامل با دین اسلام است همین اسلام است که در حقیقت سعادت دنیا و آخرت را به بندگان رقم میزنه در آخیر به مسلمانان در خصوصی عمل نمودنشان به اسلام کامل چی پیام دارید؟ پیامی من برای همه امت اسلاممی است که باید به با کامل شریعت عمل کنه الله تبار و تعالی در قرآن عظیمشن برای همه امت حکم کند یا ایه الذین آمنوا في السلم کافه ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین ای کسان که شما ایمان آورده‌گین ای مومنا و ای مسلمانا شما داخل شوید در اسلام کاملا داخل شوین شما قام های شیطان و قدم های شیطان اتباع و پیروی نکنید البته شیطان برای شما دشمن آشکار است پس رفتن پیش کاهنان و جادگران و فالبینان ای اتباع و های شیطان است تصدیق گپای جادگره و وفالبینان ای شیطان است شیطان دشمن آشکار است و کسایی که از گپای شیطان اتبا و پیروی میکنه و شیطان گامهایش هاش تقیم میکنه همراه شیطان در جهنم میرود که الله تباره و تاله برای همه ما شما توفیق نصیب بفرماید در دین کامل عمل کنیم و از شیطان و از افکار شیطان باید ما و شما کنیم و در شریعت و و کاملا عمل کنیم جذا الله خ ملیسی مختلف وقتی قیمت ما و رادیو خلافت قرار دادید ما هم از مرخص میشیم السلام و الله حروبا في سبيل ننحر الكفر ونجتث البلايا نعاتل الهام ونستل القلوب إننا لله قسرنا جنودا جنود هبة لله قد حقت وجوبا إننا لله قسرنا جنودا جنود لله قد حقت وجوبا لا نوال غير أهل الحق قوما من أقام الدين منها جمه لا نوالي غير أهل الحق قوما من أقام الدين منها جمهيبا قد خرجنا نطلب المجد أباتا دونه والله الله حقا لن نوبا وابتدى نزاه سيولا سجر الريات والفكر المشوبة ها هنا شدنا المعالي وابتنينا دولة الإسلام واجتزنا الكروب كلما طاقت علينا حلقات نسأل المولى لنا نصرا قريبا كلما ضاقت علينا حلقات نسأل المولانا نصرا قريبا في قضم الهول عانقنا المنايا وابتدرنا الفجر نرقاه وثوبا في قضم الهول عانقنا المنايا, المنايا وابتدرنا الفجر نرقاه وثوبا قد بلغنا قمة المجد صمودا واجعلنا ساح بركانا غضوبا كل من عادني لوانا قد تلاشا في نظى الهجاء مخذنا سليبا فاحصدوا ما قد زرعت من شرور واشربوا الويلات كوبا ثم كوبا يا بني الإسلام عاد الدين يعنو مثل ما كان سراجا لن يغيبا يا بني الإسلام عاد الدين يعنو مثل ما كان سراجا لن يغيب نحن لله وبالله اعتصمنا واستعدنا الحق والعز المهيبا نحن لله وبالله اعتصمنا واستعدنا الحق والعز المهيبا ما ذنانا الروع عن نيل الأمان إي ورب زاد نفح الأزم طيبا في سبيل الله نخضنا حروبا نصطلي اليوم شبانا وشيبا ننحر الكفر ونجتث البلايا نعتل الهام ونستل القلوبا إننا لله قصر جنودا ننهب بَتَن قد قَدْ حَقَّتْ وَجُوبًا إِنَّنَا لِلَّهِ قَدْ سِرْنَ جُنُودًا بَتَن لِلَّهِ قَدْ حَقَّتْ وَجُوبًا, وجوبا. نومي بسار <سوك> <سوك> <سوك> برای مادر. برای مادر گفتنی ها و ناگفتنی ها دیار غربت, دیار غربت. تاریخ هفت جمادی الاول سال 1433 هجری ابو علی ادهم قسمت پنجم ای مادر سخن را بدرازا نمی کشم ولی با آن هم نادمو و پوشیمان هستم تا زندگی بیشتر برایم یاری کنم تا همه آن کرده های ناشایست را در حق شما جبران کنم ولی چی کنم چارا چیز مسئولیت ها و مکنفیت ها و ایده ها چیزی دیگری را از ما میخواهد باز هم نادم و پشیمان هستم ای مادر اینکه سفری دارم در وادی های دور و دراز راه های سعب العبور مملو از خارهایی که میخلد و انسان را به تکلیف میسازد کوهای فلک مملو از ناله مظلومین و مستدعفین صدا میزند و یاری و یاری و ویجدانها و باورها را بیقرار می سازد شاید زندگی باز برایم یاری نکند که من و خودت با هم ملاقی شویم و های مملو از خورم و خوشی داشته باشیم سخنان از مهر و محبت مملو از صفا و صدق مادری و دها نعمت دیگر تو صدا بزنی و من ایستاده و حاضر باش ولی در اخیر استدعای دارم از تو ای مادر این که در مرگم سو پشیمان و نادم نباشید چون مرگی که در میدان کارزار علی جامرترین انسانهای روز میآید این مرگ نیست بلکه زنده شدن است که هم هماسهها میآفرینت و اوراق سفید تاریخ انسانیت را زینت واقعی داده و بارنگهای واقی زندگی را مزین و زیبا می سازد و های هم نریزی بلکه فاخر باشید با این برنامه با این طرز فکرم با این طرز اندیشه ام و این نحو زندگیم چون کار زشت و پست را انجام ندادم بلکه برای رسالت انسانی و ایمانیم ارچ قائل شده ام و می خواهم تا از رسالت انسانیم ترجمه و تفسیر عملی برای قاموس انسانی داشته باشم و بر بساط این رسالت خیمه عمل را فهم و بگسترانم ولی یادت در دفتر خاطراتم فراموش ناشدنی از ای مادر باز هم مادر باز هم مادر در اخیر عرض دارم و آن این است که دست بلند بکنیم و با خلوص عرض نیایش و بارگاه آن که من و تو را به بیترین نهوی وجود بخیده و استدعا کنی تا پسرت را در دنیا و آخرت به آن قلعه از کامیابی و کامگاری برساند که گوش ها نشنیده باشد و چشمها ها ندیده باشد عقل ها فکر ها نتصور کرده باشد و با آن فلاح و رستگاری دارین باشد و با امید دیدار اگر زندگی برایم یاری نمود باز خواهیم دید باز خواهیم نشست و باز لب او باز لحظاتی خواهیم داشت مملوع از مهر و صفا و الطافت ای مادر در جستجوی حق, حق. بیایید که در جستجوی حق شویم و با کسان راه را, را بپیماییم که خود و دیگران را به طرفی جنات فرا می‌خوانند شخصا قبلا بسیار احساس ذلت می‌کردم الحمدلله باز ما و خلافت اسلامی که فعال شد در طریق انترنت باز ما تلاش کردم این را پیدا کردم خیلی حقایق بر معلوم شد بعد از این اقدام کردم که از تحت نظام کفری به تحت نظام اسلام بیایم اینها ها کسان هستند که با کاروان خلافت اسلامی راه پیموده اند خواسته الله بود که ما پشت کردیم، گشتیم، با استازه هاش ناشتیم، با جاهای مختلف هاش و دیدیم، شنیدیم و از همه شنیدیم و براخره تانستیم به توفیق الله تعالی ما به قطر رسیدیم این همه را در برنامه در جستجوی حق فراموش نکنید جمع شبها از راژیو صدای خلافت